برو به کار خودی ای واعز این چه فریاده است مرا فتا دل تو را چه افتاده است میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقی است که هیچ آفریده نکشاده است به کام تا نرساند مرا لبشت چون نای نصیحت هم عالم به گوش من باد است گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی اساس هستی من زن خراب آباده دلا منال زبیداد و جور یار که یار تو را نصیب همین کرد و این از آن داده است برو فسان مخان و فسون مدم آفز که این فسان و افسون مرا بسی یاده